بسم الله الرحمن الرحیم مثال رو خوندیم عجوف رو خوندیم ناقص رو خوندیم اونا هر کدومشون فقط یک حرفه الله توشون بود حالا رسیدیم به اون کلماتی که دوتا از حروف اصلیشون حرف الله باش مانند شوا هم واب حرف الله هست هم علیف منقلیبه حالا این دو حالت داره. اگر این دو تا حرف الله کنار هم باشند، فاصله ای بینشون نباشه، اسم دیگه ای می میگیرد و اگر فاصله داشته باشند اسم دیگر. ابتدا باید بدونیم اگر فری دو تا حرف الله رو داشته باشه، دو تا از حروف اصلش الله باشند، بهش لفیف گفته میشه. اگر اون دو تا حرف الله کنار هم بودن بدون فاصله بهش میگن لفیف مقرون مانند شوا که واو الف کنار همان و اگر بین دو حرف الله فاصله باشه بهش میگن لفیف مفروق مانند وقا واف حرف الله هست الف منقلب حرف الله هست ولی بین وافو الف قاف وجود داره یعنی فاصله هست اِن ما لفیف مقرون رو می یعنی اونی که عین الفعل حرف عله هست و لام الفعلش رابع معتل الان و لام چهارمین ان چارمین معتل معتل الان و لام هست یعنی اونی که عین الفعل و لام الفعلش حرف عله هست و یقال له بمعتل الان و لام گفته میشه لفیف المقرون لفیف مقرون فتقولو شوا مانند شوا شوا در اصل بوده شا و یا ولی یه نقطه رو عرض کنم قبل از همه چیز در لفیف مقرول یا در همون موتلل اینی و لام قواعد ناقص اجرام شدن قواعدی که در درس قبلی گفتیم قواعد اضافی اصلا وجود ندارد قواعد اجواف توش نمیان با وجود این که لفیف مقرون شوا حالا اگر به اصطلاح آمیانه حرف بزنیم میشه گفت هم اجواف است و هم ناقص گرچه این اسم صرفیال کار نمیبرن منظورم این است که موقعی که وسطش حرف الله هست از این جهت اجواف حساب میشه و موقعی که حرف آخرش لاملفلش حرف اله هست ناقص حساب میشه ولی فقط قواعد ناقص در این اجرا میشن پس شوا در اس بوده شوایه که شده شوا یشوی هم بوده یشویو که در ناقص خوندیم در مزاره حرف آخر ساکن میشه شوا یشوی شواایشوی شین در مصدر ما واوی نمیبینیم در حالی که واو جز حروف اصلی این کلمه است شوا لذا پس اینجا یه چیزی رخ داده است و اون چیز چی است در اصل اس بوده شو شاوین ولی ما در بحث ناقص خوندیم هرگاه قاعده کلی است وا و یا با هم جمع شوند اولی ساکن باشد واف تبدیل بیا می شود خود در این مسئله واف تبدیل بیا شده و در یا ادغام شده شده شیعن مثل رما یرمی رمیان این شوایشوی میگه بر وزن فعلا یفعیلو هست مثل رمایر می هست قوی یقوی بر وزن رزی با ولی قوی یقوی در اصل قویه بوده قوی و قوی و واوی هست دیگه پس علت چرا شده قویه قاعده دیگر در بحث ناقص خوندیم هرگاه واو در یک گوشه باشد و ما قبلش زمه نباشد تبدیل به یا می شود اینجا واو از اون جایی که در یک گوشه قرار گرفته و ما قبلش هم کسره هست تبدیل به یا میشه میشه قویه هم چرا صرف نمیکنیم بخاطر که مثل ناقص صرف میشه کسی, کسی که صرف میخواد بره در رجوع کند به بحث ناقص که البته در بحث ناقص دیگه مفصل فعل ها رو ماضی، مزاره و امر و صرف کردیم. لذا شوا مثل رما تا آخر صرف میشه. شوا شوایا شوا شوت شواتا تا آخر. هم مثل یرمیش، یشوی، یشویانی، یشوینه پس قویه در اصل بوده قویه گفتیم چرا شده قویه یقوا هم شد بوده در اصل یقوه و یفعالو رزیه یرزا بر وزنه فعیل یفعالو هز لذا چون واف حرف چارون بوده قائده دیگه تا قائده رو یاد داشته باشیم واو و یا متحرک ما قبل مفتود تبدیل به می شود قاعده بعدی واغ و یا هرگاه با هم جم شوند و اولی ساکن باشد واو تبدیل بیا می شود مانند ریان شیان و قاعده سوم این هست که واو هرگاه حرف چهارم قرار بگیرد واغ هرگاه حرف چهارم قرار بگیرد ما قبلش زمه نباشد تبدیل بیا می شود پس این ست قاعده رو خوب به ها بسواییم و ویای متحرک ما قبل نفتو تبدیل به ایم میشن مانند شواه که در افت بوده قاعده بعدی در مزارع از لام حرکت حس شود، قاعده بعدی واب هرگاه در یک گوشه باشد ما قبلش مکسور باشد تبدیل به یا می شود مانند قوی و که شده قویه و قاعده چارم این هست که و, و هرگاه حرف چارم قرار برد و فراتر از چارم یعنی پنجم شم در این حالت ما قبلش مزموم نبود تبدیل به یا می شود مانند یق و, و که می شود یق و البته یاق و و ابتدار و تبدیل بیا مشوهد یاق مش و یا یاق و يو و یا متحرک مقام مفتو تبدیل بعلیف مشوهد که مشوهد یاق و بعدش قوة این بود واضی اما رویه یرو ريان در رین همون چیزی که در شاین رخ داده رخ داده یعنی واو و یا با هم جمع شدند که قبلا خوندیم هرگاه واو و یا با هم جدم شدن و ما ساکن تبدیل به یا می شود واو در رضیه یارزا یعنی قویه یقوی و رویه یروا مثل رضیه یرزا هستند هو ریانون اما صفت مشبهش رو هم آورده است ریان چرا صفت مشبه رو آورد؟ خاطر که در این صفت مشبه اعلال رخ میده اینو آورد ریان که از یروه درست میشه در اسب باید بشه رو ولی هرگاه واغو یا با هم جمع شدن و اولیشون ساکن بود و تبدیل بیا می شود و یا در یا ادقام می شود ریان این مال مذکرش هست فهو ریانون ریانو این مذکرش هست و امراتون ریا ریا هم موننسش است. چون صفت مشبهه مذکر نیست. فعلان هست و مال مؤنث بر وزن فعلا هست پس ریا در اصل بوده رو یا که شده ریا بر وزن فعله هست ما مثل عطشان و عطشا اتشا بله عطشان و عطشا فعلان و فعلا و اروا که اعطا هم باب افعالش هست واوی اروا باب افعالش هست افعله اروا در اصل که یای متحرک موقع مفتوح تبدیل به علش شده شده اروا مانند اعتا اینا همشون تا این جای کار واوی بودند که الفعل یا بود این الفل بود شوا رویه قویه این توشون واه بود حالا مثالی زده است که هم این الفل یا هست و هم لام الفل حییه تر حيه ميگه میگه مثل رضیه هست و حیه در حییه جائز است که ادغام نکنیم بگیم حییه و میتونیم ادغامش کنیم بگیم حیه مظاهرش هم میشه یحیا یحیا در اسبوده یحیا یحیا که یای متحرک مقام مرتوط تبدیل به الف شده شده یحیا حیاتن هم که مسترش هست در اسبوده حییتن حییتن الف ب... یا تبدیل به علف شده شده حیاتن و هو حیون حیون هم صفت مشبههش هست که دوتایا در دیگه ادغام شدن پس ماضیش حیه هست بدون ادغام با ادغام حیات و صفت مشبهش حیون. اگر ادغامش نکنیم حیه کاش میشه میشه حیه حیه حییو اگر ادغام شده رو سرف کنیم میشه حیا حیا حیو این نمونهای از صرفش رو اینجا آورده ولی به ترتیب نه آورده این فعل مازیش هست بدون ادغام حیا با ادغام یحیا مزارش هست حیاتن مسترش هست فرقو حیون صفت مشبهه حیا سیگه دوم مازی هست با ادغام حیا سیگه دوم مازی بدون ادغام فرقو حیانی حیانی هم مس تسمیه حیون هست یعنی تسمیه سفت مشبهه حیو مازی هست جمع مذکر غائب با ادغام حییو ماضی هست جمع, جمع مذاکر بدون ادغام البته جلوتر هم نگه فهم احیا احیا هم که جمع حییون هست صفت مشبهه و یا حیو در حییو در حییو جایزه که حیو هم بگیم همانطور که در رضی رضیا رضیو به جای ردویا ردو می گفتیم اینجا هم به جای حییو می تونیم بگیم حیو ولی اونجا ردو دیگه واجب بود که یا حس بشه اینجا جایزه رضیا رضیا ردو حیییا حیییا حییو که جایزه است بگیم حیو خود امر یحیا نظاره که از تحیا درست میشه احیا یکی از یاها ها هست میشه که در قواعد بحث ناقص گفتیم این مسئله رو در حالت جزم و در امر که مبنی بر علامت حرف الله هست این حالت رخ میده مانند ارده احیا در باب افعال میشه احیا یحی معنند اعیا اعطا یحطی احیا ان که مصدرش هست حرف عله بعد از علیف زایده تبدیل به همزه میشه احیا در اصل بعد میگفتیم احیا ین ولی حرف عله بعد از الف تبدیل به همزه شده در حایا یا صاله محایاتن حایا یا تن یحایا محایاتن که در اس بوده محاییتن مثل همون حییتن که میشد حیات حیات اینجا هم محاییتن میشه محایاتن یا تبدیل به علیف میشه با به استفالشه میشه شه استحیا یا باز هم حرف علیف بعد از علیف تبدیل همزه شده که این قاعده هست در این رابطه در ناقص هم چنین هست دعا در دعاء آخرش همزه هست همین قائده اونجا حرف الله رو تبدیل به همزه شده دعاء واف تبدیل به همزه شده در دعاء. اینجا هم حرف الله تبدیل به همزه شده در استحیاء در احیاء این مسائل و بدهم من یقول بعضی استحیارا چنین ثرف کرده اند این اختلاف. حرف هاست بجای استحیا گفتن استح بجای یستحیی از باب استفال گفتن یستحی خود در نتیجه امرش هم یا حس میشه میشه اونایی که گفتن استح یا امر در نظ میشه استح استحی ولی کسی که میگه استحی امر دیگه حرف علمه دیگه از آخر هست میشه میشه استحی میگه این حش که در استحای استحیه است در اساس چه قاعده است میگه لکخرت الاستعمال به دلیل زیادی استعمال وگرنه قاعده خاصی نیست کما قالو همانطور که در لا ادری میگن لا ادری یا رو حسن کنن ازا در استحیا یکی از یاها یا حسن شده استحا یا استحی استحیم امرش میشه این بود از قوائد لفیف مقرون که همون قواعد به ایلی همون قواعد ناقص رو داشت قوائدش رو باری دیگر یادآوری میکنن هرگاه واو و با هم جمع شوند و اولی ساکن باشد واف تبدیل به یا می شود دو هرگاه واف در یک گوشه قرار بگیرد و ما قبلش مکسور باشد واف تبدیل به یا می شود این دوتا قاعده خیلی مهم بودند سه قاعده سوم، هرگاه واف حرف چهارم قرار بگیرد و قبلش زمه نداشته باشد تبدیل به یا می شود که مثال همه اینها ذکر شدند